بازنگری در تاریخ قلم روه میانی می دونی که ما چون نخستین کشور جهانی بر سرزمینه های اطرافمون نام میذاریم اون بلایی که سرعی های نویشته های ما اومد بر این شخصیت رو کرد ولی مشابه این هم در جاهای دیگه رخ داد مثلا ارفه در یونان یک چنگ نواز معروفه ما یه اورفه تاریخی داریم کسی که عاشق زنشه و چنگنواز بسیار خوبید اورفه اسطوره کجاست جایی که میره دنیا مردگان زنه رو روش برگردونه یعنی در جهان باختر اومدم گفتن خیلی خوب یه شخصیت شد هم داشته وشیم ما دو قسمت می‌کنیم شخصیتش شخصیت اسطورهیش بره تو داستان‌های اساتیدی بر رشته کلاس بیاد یا مفاهیم تاریخی شما سرجش نگهر میده عاشق کارام میجون که این زمستون معمولی که آقا مثلا میده. اصلا نیست این داره یه دوره داره آغاز اسایخمدون ببینید یک فلسفه ای از یکی از مکاتب ایران که هم مثل این زردوشتی اونم نسخه اصلیش آموزه های اکتا فرسی دوشه هست کی در آفریدگار دوگانگی در آفرینش. اینو شما میبینید به نام ایزد یکتا یک آن فریدگار و یک پروردگار هستی با عرض سلام و احترام خدمت عزیزان همراه پژوهشگران و علاقمندان برنامه ایران وچ. خیلی خوشحالیم که در قسمت 15 همه این برنامه در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم از سامانی اینترنتی www.sidaeumid.com رادیوی اینترنتی به عنوان یک حرکت جدید در ایران حتی برنامه خودمون رو بر اساس دلایلی که در قسمت های گذشته عرض کردیم یک حرکت جدید در مورد تاریخ نگاری و تاریخ پژوهی قلم روی میانی و ایران میشناسیم و تلقی میکنیم پل ارتباطی شما شنوندگان گرامی با تمام برنامه های صدای امید و همین برنامه ایران ویج ایمیل اینفو از صدای امید دات کام هست به اضافه شماری پی و 4 دل قسمت های گذشته از کردیم مقدمات رو شروع کردیم و یواشواش چهار تا برنامه هستش که شروع به رسم نواره تاریخی کردیم برای اینکه بتونیم به توافق نسبی نه توافق کلی توافق نسبی در مورد مسائل و طرح هایی که مطرح شده برسیم نیاز به مباحثه بیشتری داریم اینجا مانند مقدمه نمیتونیم خلاصه از مباحث بگذریم در برنامه گذاشته جناب آقای ایران مهر گرامی شروع کردن مسائلی که در رابطه با رسم نوار تاریخی هستش. مباحثی رو مطرح کردن در رابطه با استوره های ای و همچین استوره هایی که بسیار شباهت های زیادی با استوره های ایرانی دارند. جناب آقای فیروزی هم مباحث خودشون رو مطرح فرمودن همچنان به موازه گذشته خودشون مبنی بر اینکه اسامی و نام های دوره هایی که تحت عنوان دورهای پیشدادی مطرح هستند اینها دقیقاً اشخاص هستند دوره پادشاهی داشتند و در ایران و در این قسمت از کره خاکی حکومت کردند بعد در خدمت جناب آقای کریمی بودیم که از دید زبان این مسائل رو بررسی کردند و فرمودن که ما به دلایلی این اشخاص رو در واقع اسطوره میدونیم چرا چون که نام اینها شناسایی و همچنین کاتگوری تشکیل دهنده و زبان شناختی نام اینها ریشه در زبان های مختلف داره ولی افراد تاریخی مثل کوروش و داریوش ما ریشه های زبان شناختی اینها رو در اونا نمیبینیم لذا اینها افرادی که تحت عنوان مثلا دیوکو کوروش داریوش مهرداد تیرداد از به حضورتون اردشی اینا اشخاص تاریخی هستند و مشخص هستند و تاریخ روشن و مشخصی دارند ولی شخصیت‌های اسطوری و شخصیت‌های شاهنامه‌ای و شخصیت‌هایی که توی اسناد تاریخی هستند همانند مانند و جمشید و تحمور است بر اساس هم اسناد تاریخی که ما داریم و اسناد که از دوره ایران کوهن باقی مونده و خود ساختار زبان شناختی اسم اینا حتی کلمات اینها اینها اسطوره هایی هستند در قلمروی میانی این برنامه رو با جناب آقای فیروزی عزیز شروع میکنیم که خیلی اصرار دارن مباحث خودشون رو مطرح بکنن و دلایل خودشون رو بگن چون در نشست پیشین در قسمت 14ام ایشون به پاسخ پرسش و ابهامی که در مورد نظرات ایشون بود پرداختن در مورد اون نمودار سالی و نمودار تاریخی که ایشون مدعی هستن که این پادشاهان تاریخی هستن زمان و مکان مشخصی داشتن رو فرصت نشد بهش بپردازن به پردازن لذا ازشون خواهش میکنیم که شروع بکنن برنامه رو و فرمایشات خودشون رو دود برشنوندگان و حلاق مندان ارزام خدمتون در نشست قبلی دوست ما آقای کریمی فرمودن که شخصیتی استروی شده یا استروی به قولیشون مثل پیش داریون که اینا مثل کیومرس و اینها اینا اسامی های نسبت داده بهشون رو گرفتن و بنابراین اینا آدم نیستن این دوره هستن ببینید دو جور من الان میخوام به این قضیه پاسخ بدم. بله. یک ما به روزگار حخامنشی هم اسامی داریم که اینا مفاهیم استورهی دارن مثل ارتخش اسره پادشاهی راستی خب الان تکلیفچیای رو اس فقط می‌خوام عمل ما پس ما سه تا اردشیر نداشیم بذونه اقامنیشیان چرا داشتیم اسامی مفدارای مفهوم اسطوره‌ای هستن آرمانی هستن این که زمان اخامنشیان هست در های کهن‌تر که انسان با طبیعت بیشتر در ارتباط بود شما این تو سخوستان می‌بینید اسامی انسان‌ها اسامی برگرفته از اندیشه ها اخلاقیات یا مظاهر طبیعت بوده تعجب نداره که اسم مثلا یک پادشاهی مثلا خورشید درخشان باشه یا پادشاهی درخشان باشه دارم. یا پادشاهی قبضتش مثلا زندگی میرا باشه یا زندگی مثلا جاودان باشه این اسامی اسامی انسان‌های کهن هست در سرخپوستان شما این می‌بینید یعنی صرفاً به خاطر اینکه اسامی اسامی حالت اسطوره‌ای شده و داره مفاهیم اخلاقی هست اما نمی‌تونه هویت تاریخی و موجودیت فیزیکی‌شون زیر سوال ببریم دیده دوم ببینید ما باز هم پادشاهانی داشتیم در دوران تاریخی اثبات شدهمون که اینها یک نام داشتن و یک لقب لقبشون بیشتر بر اساس ادعاشون یا بر اساس کردارهاشون بهشون داده شد مثلا ما داریم اردشیر مثلا دراز دست یا مثلا با حافظه ما اینها رو شاپور ذوالاکتاف دقیقاً برفرد مثلا تحمرد زیناوند که مثلا لقبشان هم پشتش هست ولی این برفض پادشاهی پشتش یعنی مثلا فریدون اسمش شباهت داره با کردارهای نسبت بهش داده شدن این ممکن بوده لقبش بوده و ما اسمش امروز عدس داده باشیم باید. این امکان پذیر هست و این آدم پدر داره این آدم مادر داره مثل داستان هرکولین هم میسید پدر مثلا خدا باشه یا مادر مثلا دولفین باشه مثل آشیلی اصلا این داستان ها نیست این کاملا انسانیه پدر و مادر به نونی آمدنش زمینی هست. اگر می‌بینید اسمی با کردار مشابهت پیدا کرده این ممکن لقبش بوده شکل همانطور این که ما داستان فردون داستان عجیبی نیست مملکتی داشته بین سه پسر تقسیم کرده این کار چند بار در نقاط دیگر دنیا هم انجام شده شما فکر می‌کنید کشور پروز و کشور فرانسه چطی ایجاد شدن شارلمانی کشورشو به سه قسمت تقسیم کرد یک قسمت رو داد به یک پسرش یک به شارل فرانسه رو داد و سراوند دا به پسر سومیه که اون قسمت وسط شد بعد‌ها جای جنگ پروس و فرانسه آه، آه. یعنی این حرکت کسین شالمانی موجودیت و پسرانشون رو زیر سوال چون خیلی نزدیکتر هستن تصاویر نقاشیشون هم هست نه صرف یکردان نه صرف اس یا لقب نمیتونه هویت رو مطلقاً ببره زیر سوال اونم برای انسانهای بسیار کوهن که اینا مザایر طبیعتی اخلاقی داره رو میذشن رو خودشون چون چیزی دیگه ای نمیشناختن که شوالسان اسم یه پاچه رعد تا چیزی دیگه نمیشناخت این اصلا به این ما نباید گول بخوریم ولی قبول دارم که کردارها استورهی شدن زندگانی طول مدت حرکات استورهی شدن به علتی که جلسه قرب گفتم داستان خدایان افتاد روشون کتابت با فندگی شهرسازی خونه سازی به اینا اطلاق شده به اینا داده شده و اینکه که خب خیلی دور هستن اینا مشخص است. با میگم که ما بعد این داستان‌های شاه‌و و برگدار رو از داستان‌های تاریکشون جدا کنیم. برای نمونه به من اولین کاری که میشه کرد این همون کاری بود که تو سومرشناسان کردند این سال‌های عصرای ما بعد تلاش کنیم زودایش بدیم از شر حالی اینها. عصرای می‌کنم توی نوشته های سومری هم برای پادشاهانم چنین سال‌های عجیب و غریب و نجومی هستش باجیت هر وجود داره یعنی اون به اسم سر. این مودلی 6000 ساله. و این سیاهه کهانترین فهمان روایان میان رودانی سومری پادشان اروک اور همینجور علیفین می‌کنه. عدد هزار ساله یعنی شما بزرگترین عدد استویش برای ایران فکر کنم زهاک باشه هزار سال بلد. حالا برای این پادشاهان میان رودانی. اینها این اعداد این زدایید شد و الان مشخصه که اون پادشاهها به صورت تاریخ دقیقه. چند سال هستن تاریخ اومد... دقیق اومد... نه دقیق حد زدن ولی آه. بود... آه. از مثلا گفتن دوره پاچان اوروک این اسامی حدود 2900 پیش از میلاد و 2800 پیش از میلاد سر مثلا شیشومیش بگن سر مثلا این پیرامون 60 سال حکومت کرد دو... از 2500 مثلا 500 تا این حرکات هست این دقیق اومدن گفتن معیارشون سیلابی بوده که در بین و نهر یا میارودان ایجاد شده و انتهای ما می‌شناسیم علان گفته اینقدر آدم داریم با اینا همسایه‌ هاشون بودن با این ما این تخمین رو می‌زنیم از این تر میشه برای شخصی علی کیانی انجام داد ما چندین نقطه پر رنگ دارین که میشه برایشون می‌خاید چادر خیلی تایر گزاری و واس کرد و این زمان ها رو بهشون دادقطعا اختلاف خواهد بود دقیقتر میشند ولی از هیچی خیلی بهتر است. یکی از اینا پایان یخبندانهه و بازگشت از ادامه یخبندان. این تم های سرمایه برث از, از یخنددان که ما در رو جمعشید یکی از اونها زمان به زندگانی روزگار اش زرتوشته چرا؟ ببینید چون وقتی به شخصیت های پیش بیشتری اگه زیر سوال ببرید به کره کامل اینا پی سر کی گشت ها روزگار زردش در برق نشسته، باباش لوهراس به جانشین کی خسرو اون پادانشین کابوس اون یکی جانشین اباده اون یکی جانشین کی بیشتریانه. دیانه آقا دوستانی که در واقع مدعی هستن دوره پیشداد نماد دوره ازش برای مثلا گشاست من تا اونجا که اطلاعات گشاست مثلا یک شخصه تاریخی میدونن که همینجا بهش میاد دیگه بس این وارث کیه شما که نمیتونیم دیگه بیایم از قلم سند بسازیم که ببین نه این وارث مثلا سنگ شاه که چیزی نیست شما متونتون دستکاری کنید مگه عینن به همون درجه اعتبار برایش متون نییافته باسن شناسی پیدا این ما خط زیر سوال می زنجیرشون تا خوره که گشتراز ما که گشتون واسه هیچ کسی این دار خواهد بود با این با ما دقت کنید اینها رو بعد ببینیم زماندگی کنیم زدایش بریم خب یکیش پس شد پس یخماندان و پایان اون سماهای برمی‌گاشن و می‌رفتن یکی از زماندهی به روزگار اشو زرتشت هست که این از چه تاریخ است یکی استناد به اسناد یونانی رومی هست، استناد به متون ایرانی هست. و به ویژه خورشید گرفتگی که در کتابهای دینی زرتشتی اشاره شده که در سال سی, و سی پس از زایش زرتوش این خورشید گرفتگی دیده شده در سرزمین های فلات ایران و اینا ترسونده این خورشید گرفتگی باعث در ساعتی از روز که تأثیر بذاره بر بخشی از مردم فلات ایران اینا با بعد زماندهی کرد و بعد این سال 330 به کدوم از اون داده‌های یونانی یا ایرانی میخوره. اینا جاهاییستون میشه اتکا کنی خب روزگاری که گشتاسپ پیدا میشه اینا دقیق تر نوشته شدن این سال 42 زرتوش سال 30م گشتاسپ چون 8242 سالش بوده اومده به بل گشتاسپ به 30 سال حکومت گذاشته با شما نقطه تولد زرتوش رو پیدا کنید از بروکسوف تمام اینا رو میتونید ردیف کنید دهی کنید با داده های مختلف این هزار سال پیدا کنید چند سال حکومت کرد. اینا خواهیم کرد به نظر من باید این کارو بکنیم این به معنی این نیستش که ما بخوایم داستان مثلا اختراع خرد یا کشف خرد یا کشف آتش در, در مثلا دوران فلان پادشاهی پیشدادی زیر سوال ببریم نه اون داستان اساتیری ایرانیست به اینها نسبت داده شده ما اونو در کلاس ادبیات در کلاس عرفان در کلاس شناسی به جمشید اسطوره میپردازیم چون نمیدونیم که اون خدای بوده که این رو برای ایرانیان فرستاده یا خطر رو باید حواستون باشه که خیلی ما پادشاهی روشن نداریم این چند تا دونام که برامون دادن باید بیرو چون به مشکل می‌خوریم قدیمی‌ترین فرعور تاریخ مصر ما 5000 سال پیش تو متونشون اون اثبات شده از ذره باستانشناسی ننداختن با ایشو وانگی داستان اسطوره منس و نارمر حتی قیافاشونم امروز نمی‌دونیم چه شکلیه هم. قبراشونم هم نمی‌دونیم دقیق و تو اسطوره های خود مصری هم زمان ها بازم نجومی بودن در مصر ماد از خود مصری‌ها زمان نداریم فقط نام داریم و بله. کارهای اصوری در متون یونانی که از روی نه زمانها کاملا طبیعی هست تا که تا زمانی که به خدایان میرسه زمان خدایان نجومیه ولی خود... فراعنه طبیع. نه فراعنه کاملا طبیعه طبیع. و طبیع. این نشون میده که اونا خیلی آنمای دقیق تری بودن و خود زمان خیلی نزدیک تره نخوصی فرانه مثل پنگز آسفات پیشه ما بحثی که میکنیم باید تقریبا بله حدود 10 تا 12 هزار سال من اعتقاد دارم زما... یخمندانی که به دوران جمشید سرمای یخمندانی در خیلی طول مدته نیست ولی سرمایی که به دوران جمشید اومده پس از یخمندان هست ولی خب در نقطه سردسیری بودن و این 8 هزار خوری سال پیش میتونه باشه یعنی مثلا چون بعد از دوره‌های یخمندان باز معمولا یه دوره‌های سرمایی هم وجود داره یا زمین سرد میشه گرم میشه یا شما تو تیشتر هم دارید توی یکی از هشتهای تیری هشتم دارید که اونجا دارن کاتبان این گزارش میگن خوش شد، هي بارون اومد. خوش شد، بارون اومد، سیلاب شد. یعنی دوران در دوران خوشخوردن ایران هست. خاطراتشون در اون دوران است. و ما نباید فقط بدونیم که این یخبندان حتما اون یخبندان اگر اون یخبندان بود، اون موقع انسان چه جوری در اون یخبندان دوام بیاره؟ اون انسان با فرار میکرد. نه وایسه بره پناهگاه بزنه. اون انسان با فرار میگه و فرار کردن به سمت فلات ایران. ولی یقمندان بعدی دیگه مستقر بودن سه تا پاچاگو اشته بود چهار تا پاچاگو گذاشته بود و اینا دیگه مستقر بودن بله خیلی متشکرم جناب آقای فیروزی عزیز با فرمایشاتون و توضیحاتتون جناب آقای الهام مهرگلمی در ادامه‌ی دلایلتون از اصول‌های اجئی و به اضافه دلایلی که جناب آقای کریمی از ها فرمودن و نکات من بخوام میگم و ها که شما هم ظاهراً قصدی از ترجمه‌هاش هم دارید و نکات تکمیلی از اون فرمودید باز هم ما به یک گره دیگه برمیخوریم که آیا بیایم دلیلی که جناب آقای فیروزی هم فرمودن دلیل در واقع غیر هم نیست که واقعاً همین قادشاهانی که ما داریم الان اونا هم دارن زیر سوال میبرن شما مثلا برخی از پجاشگران قلبی هم حتی میون حتی هم دارن تبدیل به شخصیتی اسوری میکنن و به نظر میاد که ما باید بیایم اون قسمت تاریخی که واقعا سند هم داریم براش میتونیم اثبات بکنیم که این جزء تاریخ هست و تا اونجا که من بیندم شما گیگوشتاست برم جزو تاریخ به حساب میارین می این گیگوشتاستی که شما جزو تاریخ میدونین تاریخ رو حالا ضمن توضیحات که شما میفرمایید درام توضیحات گذشتتون پیشتادیانی که شروع میشه به عنوان یه تاریخ اسطورهای یا یه دوره از چه دوره شما معتقد هستید که واقعا یه شخصیت هست مثلا خوصم بر اساس شخصیت های شاهنامه که واقعا یه شخصیت تاریخی انی شخص وجود داشته مثل کوروش مثل داریوش، مثل اردشیش بله بس. درود به شنوندگان همراه ببینید من یه نکته رو همینجا بگم این بحث رسم نوال تاریخی بله تا زمانی که این نقاط ثابتش مشخص بشه و بعد آغاز کنیم این بخشای میان این ثابت ثابتو مثل جورچین به پر کردن بنده تا مطالبهمو نگم از اون مطالب دست بر نمیدارم چون موضوع باید پخته بشه به دست بیاد ما اینجا مناظره نمیخوایم بکنیم همونجور که عرض کردم میده دو سه نشسته پیش این که من چی پاجوریش کردم مهم نیست مهم اینه که ببینیم اسناد چی میگن سند باد جو حرف بزنید در این که ما گفتیم تو این نوار تاریخی انتهای نوار تاریخی تاریخی هیچ بحثی نداریم یعنی به اشخاصش میرسیم اون بحث تطبیقی و اینا رو هم نداریم که کی, کی بوده اون اون بوده اون نه اونا که واقعا میخوره اسنادشو میگیم اینان اما هرچی به گذشته میریم بیشتر نیاز داریم بررسی کنیم آیا کریمی اون بخش جمشیدو آغاز کردن بنده هم معتقدم دوران جمشید یکی از اون نقاط ثابته تا بله. یکی از پردامنه ترین بحث ها و بخش هاست اونو نمیدونم خدایش چند نشست با درباره صحبت کنیم. برای همین من بلی که حیف نشد دست نره وارد اون نمیشم. چند نقطه ثابت رو باید پیدا کنیم ببینین آی فیروزی درست میگن. تاریخ که از مصر پیدا میشه از دوران مثل نو. ب بله. حدود پزار سال پیش. با پژوهش های خود ایشون که من بنده جز معتقدین به این پژش فیروزی هستم، گشتاس حلوهایش 8000 سال پیش حدودی به دست میاد زمانش. کاره بله. برای این کیکاووس پیش از گشتاس, گشتاس بوده دیگه. بلده. نمیشه کیکاووس بعد از گشتاس باشه که. توی این شاههای تاریخ روایی ما دو تا. داریم؟ اما دو تاشون یه مردال پیوندوی مستقیم تری با مصر دارن. یکی دارابه. بله. یکی هم کیکاووس. اگه کیکاووز پیش از گشتاس باشه. یعنی پیش از 8000 سال پیش باشه. خب مصری هم که نبوده که این چجوری ارتباط داشته با مصر؟ درسته. اینا ما داریم پرسش می می‌کنیم دیگه. پرسش طرح می‌کنیم تا بعد بتونیم پاسخ بدیم. حالا اگه ما بخوایم کیکاووس رو بکشونیم تا زمانی که مصر درست شده. یعنی بیاریمش تا حد اغل 5000 سال. 5000 سال. پس گشتاست میشه بعد کیکاووس دیگه. گشتاست ایفان. میشه حدود 3000 سال. 3000 سال. مثلا. پس اون هزار سالی که آقای پیروزی پیدا کرده با اون همه سند میشه اون هم سنده دور بریزیم. آره نه دیگه نمیشه ببینید اگه کیکاووز رفته به مصر تو تاریخ اسطوره ما و کاردارهایی در مصر داره پس مصری باید وجود داشته باشه دیگه پس باید توی 5000 سال باشه اگه گشتاس 8000 سال پیش بوده طبقه از اس و کیکاووز پیش از اون بوده پیدا کنید پورتال فروش رو بعد اینو که با توضیح بده نه متوجه عرض بند هستین بله. بله بله اینا پرسشایی که من نمیگم پاسخی نداره اما خب با باید... پاسخ بدیم دیگه من مثلا میگن آقا مگه میشه یک نفر 700 سال حکومت کنه میدونم جمشید 1000 سال اینا عجب حرفایی خب من یه چیزی میپرسم ما اگه داراب رو همون داروش بزرگ فرض کنیم که دیگه تقریبا کس ای نمیتونه باشه و طبق اسنادی که هست خدای فیروزیه تو پایان‌نامه گفتن هومای رو مثلا مصطفی شمیران نام برده یا همون سمیرامیس اگه اون رو حدود 4000 سال پیش بگیریم که هم حدود سمیرامیس میشه با داراب شاه بعدی 2500 سال اون 4000 سال فقط 1500 سال دو نفر با هم فاصله دارن حالا آره این بعد هومای دارا منسوب میشه بعد... به شاه دیگه خب اینا بهم ریخت که اینم که درست نشود که یه از 36000 سومریا چیزی کم نمیاره یه شاه با شاه بعدیش 1500 سال فاصله داره یه جمشید هم که گشادتر شد که میدونین من میخوام نوع نگاه به این تاریخ رو بگم خوام خب از نوع نگاه به این تاریخ حرف بزنم ببینید از گشتاپ که 8000 سال پیش بوده تا هومای که ما سمیرامیس فرض می‌کنیم 4000 سال پیش 4000 سال فاصله است یه بهمن وسطشون بوده یعنی از گشتاپ تا بهمن مثلا 2000 سال از بهمنم تا هومای 2000 سال یکی از جمشیدام بیشتر شد که خب با توضیح بتونیم بدیم اینا بله بتونیم با... اگه بخوایم اونا رو با او فرزی که او 1000 سال اینا عجب حرفای علکی بوده خب که علک که جدید نزدیک تر که خیلی علک تر در میاد که گایی بخوایم اینطوری فرض کنیم اینطوری میخوایم به تاریخ. بنابراین من پیشنهاد میکنم نوع نگاهمون به تاریخ تو این زمین یه مدار باید تغییر بدیم ببینید من توی نشست گفتم یه کوزه پیدا میکنند میگن که ما تاریخ باز می اون که اصلا هیچ بدون کمک دانش زبانشناسی نمیشه تاریخ نوشه هیچکس شکی نداره اما با زبان تنها هم نمیشه تاریخ نوشه بدون باستانشناسی شناسی مگه میشه تاریخ نوشت نه اما با باستانشناسی تنها هم نمیشه تاریخ نوشت میشه وضعیت این دانشگاه ای ما من نمیدونم از کی کی کاری کرد که ای امر بر گروههای باستان شناسی کشور ما مشتبه بشه که آقا شماها با تاریخ بنویسین یک استاد تاریخ آمده اینجا بود و توی گروه باستانشناسی شناسی هم با یک کی و چیزی حرف میزاد البته ما که تاریخیا که نبود در حضور شما باستانشناسا چیزی بگین کی هم چیزی گفته کی گفته باستانشناس با تنو تاریخ بنویسن یه باستانشناس با کمک دانشهای دیگه میتونه تاریخ بنویسه دانشهای دیگه به کمک اون دانشهای دیگه و باستانشناسی میتونن تاریخ بنویسن نو اندگاهمونو باید خدمتتون بگم درست گفتین من احساس میکنم آیه البته آیه فیروزی دسته که اینجوری فکر میکنن تناب واستشناسی به تاریخ نوشت بنده ایشونو جزو دسته نمیدونم ها نه خیر از ژنتیک کمک میگیرن از هواشناسی کمک میگیرن همون چیزی که باید باشه آیه فیروزی پجوش میکنن اما کلا من فکر میکنم که یک نگاه دید خیلی باستانشناسی به تاریخ اسطوریه ما دارن یعنی فکر میکنن چون مثلا اومدن مس شناسا یا میون رودان شناسا اومدن یه دیدگاهی رو پیاده کردم. و او اون تاریخ ها رو ورداشتن طبیعی کردن و شاه و رو و چیز کردن گیلگمشو مثلا تاریخ دادن اینا ما هم حتما باید این کار رو بکنیم اولا که نو اونا احتمالا باز دوباره یه کلای دیگه, دیگه دارن سر رو باید دختان میذارن یعنی ایرم بعد نگاه کنیم یه بار آمدن یه جور دیگه تاریخ نوشتن کوچاری ها این شده اون شده حالا باز... اتفاقا چیزم غربی هم هست دیگه حالا آمدن شیری این و اینا حالا با دوباره آمدن لهستانی و اینا را افتادن که کلاهی گشاده دیگه سر مصری ها بذارن باز یه جور دیگه خدا میدونه چه چل... چیزی رو باز حالا از میگم حالا مصر رو حالا بالاخره یه دولت قدرتمندی تا حدودی مثلا ولی عراق که در واقع در مورد میان رودان خب داخل کشور عراق است ما هیچ‌وقت دولت ملی قدرتمند نداشتیم که وسی یک سری باستانشناس و مورخ ملی‌گرا بیان مثلا صادقانه بیان تاریخ کشور خودشون رو بنگان این های مربوط به میان رودان هم قطعاً غربی هستش دیگه ما نمی‌تون 100 درصد در واقع به اونها رو بپذیریم تو میگم بعدش هم مقایسه مصر با ایران ببخشید به نظر من خنده داره من حالا تو یک نشستی اگه فرصت شد این جدولشو میخونم ببینیم تاریخ ایران طبق اون این جدول مستند از زمان سکونت و شکار و در دوران میانسنگی تاریخ بساق پیدایش اینا بر اساس گسترش سفال چیز شده نه بر اساس اصطلاح پیدایش انسان و اون تکامل تاریخی انسان به کجا رفتن اینا ایران از حدود سکونت و شکار دورمیان سنگین جدول نشانه ها رو داره نشون میده حدوداً هشت هزار پیش از میلاد خب مصر از دوران مصر نو آغاز میشه حدود سه پیش از میلاد فاصله رو ببین بله فقط بیش از 5000 هزار سال فاصله پیدا شدن یک نشانه های از تمدن در یک دو سرزمینه اینجا خاستگاهه اینجا استراش معنای دیگه ای دارن تونم با اون معناهای های نوعی که بعدا راه به یک بعد تاریخ مثل جالبه در رو تاریخ در مثل نو یههیی پیدا میشه یه دیگه شما هیچ نشان های دوران نوسنگی در مس نمیبینی بلکه آدمایی بودن اما آدمی که تمدن یک ابزار چیزی نشانه از سوشه مطلقا نمی بینیمقیقا انگال یک سری افرادی که دارای تمدن بودن دارایی مثلا تکنولوژی بودن از یه جایی میان اونجا میاند یه اون دفعه هم حال شکوفا شروع میشه. به. یه دفعی از میان ده تمدن قلم روی میانی مرکزی مصر جوانترینش بله نه تای تا دیگه از این کهانترین حالا برعکس چیزی که احوان فکر میکنم مصر کهانترین حالا ما به اون بحث نمیپردازیم منظورم نوع نگاهمون به اینا باید یه مدار متفاوت باشه من خب این پس این مثلا این چیزای گشتاس به اینا رو ما باید حل کنیم من یکی از نقاط ثابت رو همون گشتاست میدونم که ما با زمانش رو پیدا کنیم اون سرماه که اشاره کردم ببینین ما تو تاریخ سه ستا سرمایه مشخص داریم ببینین تا سرمایه یک سرمایه حسابی نباشه تو استوره نمیاد زمستون یک کم حالا سردتر شد شیشه های اخزدینا اینا تو استوره نمیاد بله دیگه یک خاطره واقعا خیلی جانانه یعنی باشه یعنی چیزی باشه که یه خاطره بشه برای یک دقیقاً برای یک ملت باید خاطره, خاطره, بشه خاطره بشه تا این تو اسطوره هاشون در همونطوری که اون طوفان‌های بزرگی که مال چند هزار سال پیش از میلاد هستش بله. که برای ملت‌های خاطره شده که طوفان نو هم در واقع باقی مانده همون بله. بله ما تلاش می‌کنیم ایرانویج 15 رو که دوستان رفتن سراغش تو تارنما دیدن ایرانویج رو بعد بله. گوش کنن بشنونن تو اونجا ما تلاش میکنیم با صدای امی کنیم سه تا نمودار و سه تا تصویر رو اونجا بارگذاری کنن حالا یا خود تصاویر یا نشانی تصاویر رو در یه جای دیگه که بتونم برن ببینن این رو دوستان همراه با شنیدن حرفای بخش پونزه این سه تا نمودار رو ببینن ما در نشست های آینده این سه تا نمودار رو توضیح میدیم که مرتبط با همین بحثه حس سرماهای تو استورها زبط, زبط میشن که سرما باشن. ما تو استورها اشاره به سه تا سرما داریم. یکی سیامک تو سرما گیر میکنه. یکی خبر سرما به جمشید داده میشه. یکی کیخست رو تو سرما گیر میکنه. ما باید تو این گذشته تاریخیمون دنبال سه تا سرمایه خیلی مشخص بگردیم. خیلی مشخص. که این نشاندهنده یک دوره تاریخی باشه که تو استورهای ما، ثبت و ضبط شده من دنبالش بودم از چند وقت پیش یک پجوهشی رو دوستان میتونم برن در تارنمای فضا یا همون تار... تارنمای اسپیس نقطه اینو ببینن این پجوهش خانم کلارا موسکویتس سقوط یک ستاره دنبال دار که اونجا به انگلیسی این میدونیم که سیارک نبوده ستاره دنبالدار بوده کامت چون ثبت تو انگلیسی ثبت شده این یک ستاره دنباله داره در آمریکای شمالی حدود دوود هزار سال پیش به زمین میخوره. تو اون سه تا نمودار یک نمودار هواشناسی است که دوستان میتونن تو اون تارنمایی صدای امید ببینن اون خمشه یعنی در دوران یخبنددان واپس این یخبندداندممن های شش درجه بوده. توی این نمودار شما یه خمشه دوباره ورود به سرما می حالا حدود دو هزار سال طول می‌کشه. این آخرین سرمایی بوده که تو این مناطق نیمکره شمالی ثبت شده یعنی دما یک چیزی حدود دوباره یک یک و نیم درجه میانگین دمما کره زمین افت می‌کنه. همزمان با برخورد این ستاره دنبالدار به آمریکای شمالی بعد اون۲زار دو سال دوباره دما میاد بالا از همون گفتم اونلوش 11۱ هزار سال ستاره اتماس اون هم سیارک بوده شد نه ستاره دنباله دار بوده دقیقا کامت ثبت شده هم احتمالا میگم اندازش عبادش. چون اون سیاره ست... از کنم که سیارک یا اون شهابسنگ بزرگی که 65 میلیون سال پیش اونم ستاره دنباله دار بوده اندازش احتمال ده دو کیلومتر بیشتر نبوده اون 8 کیلومتر بله, بگه... بله اصولا سیارک هایی که اصولا به ببین ستاره دنباله دار دور خورشید میشرخند در یک مدار بیزی خیلی بلند. بله بله. سیارک ها در مدار بین بهرام و مرموزدن یعنی بین مریخ و مشتری, مشتری. میگردن این دوتا با هم فرق میکنن بعد ستاره دنباله در موقعی که میان دنباله دارن تو فضا دیگه چه به خاطر اینکه جنسشون از آره. یخ هستش به خاطر بعد سیارک‌ها وقتی به جو می‌خورن حالت شاب سنگ می‌گیرن اصولا اونایی که رو هوای کره زمین اثر می‌ذارن اونا دنباله دارن که برخورد میکنن حالا ما وارد بحث اون تخصصیش نمیشیم اما این نموداره که نگاه کنن یعنی یکی از ها این حدود بوده بعد اون دیگه ما در فلات سرمای نه. نداریم یه ف... سرمایه ۱ هزار سال پیش بوده اوجاش رو میگم ما یکم CO2 هزار سال پیش. دلسته. یعنی این سه تا سرما رو حالا شاید بگی آقا تو سیامک که برد 322 سال پیش جمعید ۱فت هزار سال پیش اتمالا کخصو رو هم۱ سال پیش. نه, نه خیر ببینیم مرغ یک پا نداره. نه. ما میتونیم یه کار کنیم. ما فرض کنیم سرمای کیخصو رو که ملایم تر بوده تو استرارای ما خیلی شدید ذکر نشده سرمای منطقه باشه. بنابراین میتونیم جمشید رو با این سرمایه۱ هزار سال پیش مقایسه کنیم و کیومرس رو ببریم سرمایه هفت هزار, سال هزار سیامک رو فت هزار سال پیش یعنی یکم کم بیارییم جلو اینا منطقی تر بشن که با مثلا اینکه خط در زمان تمرس چیز میشهم جور در بیاد ببینید معایش کدوم قطعی نمیگم ما دارم میگم همه این حالت ها رو میشه بررسی کرد اما از یک جایی دیگه جلوتر نمیشه آمد یعنی نمیشه کیک آوس باید بیایم بعد گشتنا اخه استورامون هم باید با اینکه بگین استورامون الکی گفتن مثلا که کابوس تو مصر کارداری داشتی. بله. بچا وقت اگه وقت دارم, دارم که خب زمان گشتاس بگم اشاره دو دو دو بکنم اگر نه نه میکر... دیگه اگه اگرش... گشتاس چون طول میکشون یه دقیقه بیشتر فرصت نداشتید حالا اینجا فرصت یک دقیقه شما را هم با آقای کریمی عزیز میدیم تا یکم بیشتر در مورد مثلا زمانش صحبت بله جناب آقای کنیمی عزیز جناب آقای ایران مر بر اساس اون سه تا سرمایه تاریخی که در اسطوره های ما هستش سه تا نختاره تقریبا تعیین کردن سرمایه دوره سیامک سیدو هزار سال پیش سرمایه دوره جمشید هیده هزار سال پیش و سرمایه دوره که خسرو دوازده هزار سال پیش و تقریبا حالا حالا یا حالت دوامی هم داره یک کمینا رو بیاریم جلو جلوتر. میشه. سیامک رو بگیم افته هزار افته... سال پیش؟ جمشید دوازده هزار سال پیش و که خسرو رو یک سرمایه محلی حالا یک جایی فرض کنیم که یک کم هم سشه رو باید. باید. میگم اینا رو ما حالا بررسی میکنیم کنیمیم فعلا تا اینجا اینه بله. ادامه بررسی های شما که بر اساس علم زبانشناسی هم هستش می شم کردیم به نام خدا با درست خدمت شندگان گرامی تقریبا 500 سال پیش یک دست رو زبان زبانی برای زبان سانسریید بله. بعد یه اصطاححی اونجا باب شد به نام بهوویری بهوویری بهو یعنی بسیار ویری یعنی برنج یعنی خب اسم میشه میشه بهوویری یعنی برنج بسیار گفتن نه این نیست یعنی دارنده برنج بسیار فعل مانه. دارندگی درش مستتر بود به این هم هنوزم هم همین زبان شناسا به این اصطلاح میگن اصطلاح بهوویری مثل چه چیزی مثل گرشاس خب گرشاس اسم لاغر خب به این یعنی طرف شبیه اسم لاغر بوده نه گرشاس یعنی دارنده اسم لاغر به این حالات میگن بهوویری بله خب من مثلا همین میگم میگم ببینید کشور ایران بیایم اسطوره هاشو مصر رو رودان بسنجیم من خب اینو درست نمیدونم کشورم بسیار آب و هوای ویژه فلات بسیار عجیب که همین الانش دشمنام از 18 و آب و هوایی که در جهان شناخته شده نه داشت در ایران پیدا میشه شما تابستون میرید مثلا تو اردبیل برفازی میکنید زمستون میرید تو بندرعباس قایق موتری سوار میشید اصلا قابل قیاس نیستن اینا با استورهای مصری یا میان رودانی خیلی هم حتی مثلاً توی بعضی مناطق خیلی جالب هست مثلا شهری مثل سمنان آب هوایی کویری داره ولی کنار شهر شهر یا آب هوایی مثلا اگر نگاه شنیده باشن اناراش هم خیلی معروفه وسط بیابون هم هست خب این تغییرات آب هوایی که دهها آتشفشان آتش فشان زلزله سرماه های عجیب غریب ایناش در درصد در اسطوره‌های ما نشانه دارن در حافظه تاریخی ما باید مونده باشن خب شما بید مثلا کیومرس این حالت چیز نداره بهویریو نداره دارندگی زندگی میرا نیست خب زندگی میراست خب مثلا سرخ سرخپوسی که دوستام فرمودن شاید تو چند سال پیشم گفته میشد ولی مثلا می گفتم مثلا خرس قوی خرس سیاه نه ابر سفید اینا بله. دور دار مفاهیم پیچیده مثل کیومرث نبودن کیومرس سالها زمان برد معنی اینجوری معنی فوق العاده پیچیده ای داره هوشنگ این یعنی سازنده خانه نیک هست خوش معنی خانه نیک اصلا سازنده داشت مستحر نیست این یعنی به نیست این یعنی خانه نیک نه؟ خب من چطور بگم خ خب همه این پادش اسمای اسم های از بین رفت فقط لغ باششون خب بعد اسمشون رو هم میمونه یه دوشون اسمشون میمونون دو تاش هم لغ باش یا حداقت با اسمشون ل باشش ماستومیه اردش دراز و اسم ارشی رو میدونیم چیه ارشین به اووییهه ولی اسم کیومرس بهداری میگه تمرس زیناور ما این داریم اینو خب این تحمورست زیناوت خود زیناوت شده که کنیهش پس خود تحمورست چیه؟ نامی هست به عظفه لقب اصلا این بعدها بهشون اضافه شده چون چند حرکت توش تحمورست یعنی که آقا رام کننده حیوانات، چون چند تا حالت توش اتفاق افتاده بوده من این که دارم میگم, میگم گرشاست مثلا اصلا سیستم استگزاری ای ما با واقعی ما خیلی فرق میکنه تحمورست رو به معنی کرده. خب اون بعد اون طاحونه اسم بعد طاحونه اومده رو ولی خب شما ببینید اصلا چرا اینو نمیپذیرن چون اصلا رو هیچ هیچ‌وقت حیوانه استوری ایران نبوده هیچ بحثی رو جامی که مثلا اهلی شده تو وصف یا, یا مثلا شیر عقاب اگر این چیز بود میتونستیم بگیم آقا مثلا جز ولی خب یعنی همین این استواقا ما موجب می‌کنه که بگیم آقا این داستان یه چیز دیگه‌ئه اگر مثلا می‌گفتن شیر بزرگ می‌گفتم جانور اسطوره‌ای ایران بود می‌گفتیم آره ولی روبا هیچ اسطوره ایران نیست اتفاقا بود منفی داره روبا در اسطوره ایران پس ما بعد بگیم که آقا اینجا اون معنی نیست درست. معنی چیز دیگه‌ای برای اسطوره ایران بزو عصب و گاوه بله بلد. حالا خب بعد اون سی رو اینا هم اضافه شدم این سه تا رکنه بعد اجازه برید اینجا من این مخالفتی بکنم مفاهیم اسوری تغییر خواهند کرد مثلا گراز جانداریس که برای مثلا ایثار بهرام مقدسه که چهرهشه ولی در دوران مثلا شاهنامه صحبت می‌کنه چیزی مفهوم ایوان معدیه به ایران در حمله می‌کنه می‌بینید اینا قابل تغییر هستن یعنی خب اون به خاطر که دوابایی که بوده هم خودتون گفتین سر ساسانی یا اینا به وجود اومده ولی خب بعضی از اصولها ما اصل ول کنیم بریم فره رو بچسبیم خب میدونسه سخ... مثلا روزه شکدال میگرفته ما یه اصولی نداریم که مثلا از نام مثلا این اصولای ایران ما که داریم میگیم تو مثلا تو یه زمانیش تغییرات اب هوایی که اتفاق افتاده دورانه یه زمانش میریسه به نجات مثلا من میگم فریدونی که فسادش سلم این آشکارا از سیره اوستایی به معنی قوم سرمته. من... اصلا اصلا ما تاریخ اینجوری یاد ندارن که آقا ما تاریخم تا شاه نباشه هیچ معنی نداره. خب اگر ایت... اول ملتی باید بیا فرهنگ و تمدنی برسه بعد حکومت درست بکنه. وگرنه اون شاه نیست اون رئیس قبیله است که قبیله شایانه چیزام دارش. هم... مفرحبت... یک نکته دیگه اینه که که دور نشوده چون چون آقا گفتن که به خاطر بعد 4 تا اسمم میمون دیگه همش لقب ببینید ما 13 تا رامسس داریم. خب این لقبه. پسر ر اسمش مل... نمونده از اولی تا سیزدهمی اسمش نمونده فقط القاب مونده این شده نیست هر... تاریخ جدیدتر وای باحال تاریخ کهن‌تر شما مثلا 13 و آ 13 دارید آ 13 و و جمشید دارید آ 13 و دارید قطعاً خب خیلی همین هم نفته است اینکه من الان من یک قضیه این بود که به حال لقب میتونه مونده باشه این... و اسم نمونده باشه این طبیعی است ما, ما جلسات اول گفتیم باید با انباشت شاخ جان انباشت بله تا انباشت علوم مختلف برای شاخ درختونا چیز کن ولی خب باید عملان هم اینا ثابت کنیم دیگه باید دارده. فقط دو حرف نباشه الان خب من کتابی هست آهای دکتر مالبروریان نوشتن وزوق تن لرزش هاس جهانه نمیگم ایران در جهان حرفش یک کتاب بسیار ارزنده ای به نام دانش کیهان و زمین در ایران ویج. یه در اه... وسط کتابش هستش صفحه 28 میگه می میشود نگاره های باستانی یاد شده درباره زمین، زایش کوها و لرزش های همزمان آن نمیتواند نگره های کهن رودانی، مصری و یا اروپای باختری باشد. این باورها باید از آن مردمانی چون مردمان کهن فلات ایران زمین باشد که از شمال، جنوب، خاور و باختر به وسیله رشته سر به کشیده به بند افتاده و جزء زندگی هر روز ایشان وساب آمده باشد یعنی آشکارها داره میگه آقا اسطوره ایرانی فرق میکنه با مصری و اروپایی و اروپای غربی و و میان رودانی بله. چون آب و هوای اینجا کلا شما وقت کوها ده ها شما ده زمین لرزه داشتی ده ها آتش داشتی هزاران نفر سه این قضیه کشته شدن سرماه های داشتی اینا صد در صد در حافظ تاریخ این باید مونده باشه از افتاقی نفعی مشابه این چین هم همین وضعیت آب و هوایی ما رو داره دقیقا آب و هوای چین این داره. و اونج هم دقیقاً پادشاهان میبینید با همین حرکات که بهشون نسبت داده میشه اونا امروز اثبات شدن همشون دقیقاً دور دو سلسله شیا و شانگ اثبات شدن با شاه باخنده دارن می... شاه نمیدونم سازنده دارن الان آقای ایران مهرا فرمودن اگر ما اینجوری پیش بریم اصلا خود پادشاه ها مثلا یه اختلاف میفته که از همین حالتی که ممکنه بدتر میشه عرضم همینه نمیتونه تفاوت همه دنیا یک شکل باشن از ژاپن بگید تا پرتغال این وسط ایرانیا ذاتشون و پندارشون تافتهی جورا بافته باشه نمیتونی خلاف عقله الان ما ما یه مثال براتون بزنیم میگیم آقا مثلا میگن خدروهای مثال بیاد دسته بندی کنیم میگن بله. میگن آقا خدروهای مثلا یه سری خدروهای سواریه سواریشون مثلا خدروهای باربریه میگن باربری ها همچین چیزی دارن مشخصاتی دارن سواری هم همچین مشخصاتی ولی آیا بنز مثلا با پراید کیه هر دو تاشون سواریان 10 دوز شباهات هم با هم دارن فقط چهار تا چرخ دارن مثلا چهار سیلندر مثلا حالا مثلا میگیم فرمولشون محورشون محور جلو و دها مدل شباهات هم دیگه ولی تو بعدش که می این این شباهاتا اختلافای داره که بسیار با هم فرق میکنن نمیدونی میگه آقا پراید همون چیزه ما تو تمام دنیا دها ده مدل ماشین سواری داریم که ده ها مشخصه یکسانم دارن ولی بعد بریم ببینیم آقا دها ده اختلافم دارن موفق فقط شبه نه نیا کنیم اختلافان را بعد کنیم اختلافان... به نظر سر مسائل در واقع ریز که مثلا این اسطور اینجا متفاوت اونجا متفاوت نیست ای... اینا مسائل ریزی هستن. اصن این مسئله خیلی ما بحث نکنیم بله. هر کدوم از دوستان دلایل و استدلال ها و در واقع منابع خودشون رو ذکر بکنن تا من, که... من برام میگم زم... زبان شناسی داره نشون میده. بله. اسمایی مثل کیومرز بله. جمشید، تحمورث، سیامک، هوشنگ. هوشنگ، هوشنگ کاملا با مدل گرشاسب بله. گشتاسب و بله. کیکاوس و اونها هم کاملا با کوروش، داریوش، اردشیر کاملا سبکشون فرق میکنه. بله. سبک ساختشون، اصلا نوع هجه هاشون نوع آواهاشون، تغییر واجهاشون واقعا کاملا با هم فرق میکنه. من نظرم اینه فقط شخصیت تاریخی باشه اونهایی که اسم بردید داره نشون میده سبک نامگذاری ها خیلی با هم فرق میکنه. بله. شما مثلا جاهش درخشنده شده، ما میگن میگن ولی مثلا ممکن یه اسمی در اوستا باشه مثلا مثلا شاهپور شما نمیتون تو اوستا بسازیش. ولی خب سبک شاه مثلا خشی هم مثلا تا به شاه و پوستره مثلا مثلا عوسته شده تا پور ما میتونیم این ردیوی بکنیم قشنگ درسته تو اون زمان ساخته نشده تو عوستهی ولی در ساسانی ساخته شده ولی الگوریتمشون یکیه بله ولی مثلا نامی مثل هوشنگ و نمیتونیم بیاییم مثلا بگیم آقا بیاین بدیم آقا شما نیا کنید اصلا هیچکونو از ایناها یکی از نکات جالب اینجاست که مثلا راکسس 11 بار میگن تکر... 13 بار مثلا که تکرار شده خب چون ما در زمان ساسانی یه شاه به نام ساس نه ساسانی نه اشکی اشکانی که نداریم ولی به هر حال یه سری هست نه اشکانی نه هخامنشی 220 سال حکومت کردن. دقیقاً هم که چند سال حکومت کرد بین اخامنشی حکومت کرد ما یه زبانی ما اشکانی اشکانی اصلا اخامنشی اسم خوش جمشید ما س... داریم. سکه داریم نداریم نه, داریم. نه باید این صورت این باید باید ما در جامعه هخامنشی اسم جمشید داریم این مردم اسم جمشید گذاشتن داری در جامعه ساسانی ما شاهزاده‌ای داریم که اسمش کاووس هست این اینجا وقتی که برای اونا شده نه به صورت شاه به اینجوری سلسله وار مثل رمسس 13 وار پسرام بگم پسر بودرگه بود کاوس شما داشتیم جمشید اول جمشید داشتیم ولی خب به اون شکل گسترده مثلا مثل کیومرث مثلا باد ما داریم با سلجوقیان هم داشتیم سلجوقیان هم مثلا کاوس می‌ذاشتن آقا بگیم بودن که بودن که اونا برای اونا وع بوده ما سند داریم کتاب سندش پیدا شده سکه در زمان ساستانی عکس تهمرس روشه که یک انسان نیمه حیوانه دیگه از این سند بزرگتر ما نداریم بله من خواستیم خواهش میکنم حالا چون بحث بازم. اگه بخوایم ادامه بدیم به درازا میکشه و وقت برنامه هم رو به پایان هسته شرمندگان گرامی مسی که بحث فعلا رسم نوار تاریخی حالا حالاها ادامه داره هنوز و بحث ها هنوز باید ادامه پیدا بکنه شما شرمندگان گرامی رو تا آغاز قسمت 16 هم به خداوند متعال می خدا رو و نگهدار